موهای بدن سه صورتان یک مو این است که قطعا برداشتنش حرام است مانند آبرو موجه اینا ریش اینها حرامند موی دووم باید برداشت بشه نگهداشتنش زیر ناف زیر بغل اینها حرامند و سبیلی که بزرگ باشه است. موهای غیر از اینها موهای مباحند موی دست پا سینه اینها تراشدن اینها خلاف ادب هست اما گناہ کسی کرد گناہکار نمیشه.